نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیلند. زن پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه کنند. نرود مرغ سوی دان فراز، چون دگر مرغ بیندن در بند، پند گیر از مسائب دیگران، تا نگیرند دیگران به تو پند،